الله سبحانه ورحمت و تعالی جوایز و نشان همان و رحمتنا رحمتك كه عدم زواهر استدلال كردن و عدم حجيت ظواهر سنه الا تفسيرش از اهل بيت متعرض شدیم در خلال بحث ها و از خریم در اینجا محبوم صاحب صاحب روایات رو به نحر دسترندی اینجوری عوردن رو اول روایت کافی بعد روایت مثلا صد و رو از شماره شست و پنج تا به اصطلاح هفتاد و پنج یازدهت حدیث میشه کلن از تفسیر حیاشی است از کلی این تفسیر ناقص ما رسیده اون ناقص شده تفسیده. یعنی نصف تفسیر رو اون نصف هم سند نداره فعلا. و چند بار از کلیم که این نشون بوده که مرحوم عیاشی مسادر فراوانی داشته اصافنم اگر پیدا بشه کتاب اصلی ایشان یک مهداری واقعا معارف تاریخی و حدیثی و رجالی ما تقریبیت میشه مثلا در تفسیرش از این جدنشته عبدالرحمن سلمی اون که معروف است و تابعین ابو عبدالرحمن سلمی است مر علی اون علاقازم فقال تعرف و ناسخ من المنسوخ قال الله قال علکت و احلکت تعویل كل کل من القرآن علاوه و فیر هست و انا عبی بسیر من فسر القرآن برعیه اینا تقریبا تنجایی که من موزم انفرادات ایشانه و انا امار ابن موسای صاباتی من سوئل عن الحکومه فقال من حکم و بین اسنین فقط کفر و من فسر آیت من کتاب الله فقط کفر ظاهران حکمه مرادش قضاوت باشه یا حکومت عنه سلطه سیاسی باشه به غیر اون راهی که خدا و احل بیترانده مراد ظاهران نیم باشیم الان فعلا ما این روایات رو در مسادر رو دیگه نداریم و انا عبدالجارود انا عبی جعفر علیه السلام قال ما علمتون فخودو. روایت روز روایت ایست که آدتن علمه ما زکر در باب عدم و حجیت زن چون امام فهم ما علمتون فخولو اونی که عیم داریم بگیم و ما علمت علمو فخولو الله و علم انا رجل ینتز اول آیه فیخه رفیه ها ما بین از سماع و توی برسایی زن حالا تو این دوره شاید تو ذهن کنی تو نیست یکی دو تا روایت بود که علمای ما درباب این که زن خود نیست مثل این بهش تمسار کردن که حسانید واضحی نداره روایت شماره 69 از عبدالرحمن از این هم تا اونجایی که من الان می هست اما از عبدالرحمن منحصر به ایشان لیسه اون ابعد من اغول رجال قرآن منقران از اغول رجال یعنی اندیشه های افراد بدون این که مستنده به کتاب و احل بیت باشه و ان یعقوب ابن یزیر ان یاسر که ایشون یاسر خادم بسا خادم از رضا بوده المرا و فی کتاب الله خفرانی این, این احادیث انصافا قفلی به ما نحنفی نظرم باید تبرک میکنی بله و انظراره ان عبی جعفر علیه السلام یه احتمال داره اون روایت امار ابن موسا بله شبیه این باشه یا ایرواته ابو جارود ایا کم ولتازومه فعلا تحت به عمل امل املو از بین میبرد و سهم حق دین این احده کم لیان زب ال آیه ابو با جارود که 68 خیلی شبیهه فایخر روکیها ابد ادم نه سما دقت میکنیم ابو جارود چون جز بعد و جز زیگیه شو و مثل و این ها خط اعتدال بودن و مثل جابره نیازد جوفی که اصطلاحاً جزه خط قلوب به حساب می آدن جزه خط قلوب بود چیزی که هست انسان تحجیبش میکنه که یک متن واحد گاهی به دو نفر نسبت دادن این هم خیلی عجیبه یعنی چیز قریبیه مثلا و انها انعبی جعفر زراره و انعبی جعفر نظر قرآن ناصف همه هم. مطلبش دور روی سال هستن مشکلش اینه که وان جابر و انها ان عبی جعفر شماره 723 قال لست شیعون عباد من اغول رجال ان تفسیر و قرآن میگم خیلی تحجیبا بره ما مثلای مصدر مثلا را از زراره نداریم تازه در کتاب خودعیاشی این طوره قال سهل تو عباد جعفر علیه السلام ان شیعون من تفسیر قرآن فعجابنی مثلا اوثانی ازا فجبابنی به جواب آخر و تو جئل تو کهدا کن عجبفییاده مسئله به جااب غیر و قبل دایم اون فقال على این سلام انعای ین ل لای از ینده و اول هافیشه و اوسط آفیشه و آخر آفیشه این کلامی است و این نه زراره از ازی کردن میکنه در کتوب ما این کلام از جاور نود شده. حتی مقابل زرار من فهمش تو شدی جابجا شدی شماره هفتادشار انجابر قال قال ابو الله علیه سنجو با من ابو الله. یا جابر این قرآن بثن و البثن زهر و لیس شیعان افعد من قول من این ال آیه لینز ال اول یعنی اونی که ما الان داریم این حدیث گذشت همین حدیث مصندن انجابر ابن یزید جعفیست در شماره چلیه حالا این آن کتاب چاپ بنده خدمتشون باشه سفر سرچر اینجا مصند بود ان جابر قال سهل تو عبا جعفر انشه تفسیر فعجابه نیم سهل تو هم ثانیتا فعجابه نیمشه آب این خیلی عجیبه سر سردر نمیاریم. اونی که در کتب ما هست مصند اند جابر انعبی جعفر این ادعا ایو شورده ان زوارا انجام کرده خیلی archive مثلا ترجمه کرده باز از جابر نکرده از ابو عبد الله نذر کرده سر نمی‌اوم انسان‌ها بعضی روایتو من امروز رو برانو بخونم فقط برای این جهت که خیلی نقاط ابهام در این جهت وجود داره چون جابر و زوارا تقریبا دو خط تا دو خط فکریه اون که یک حدیث واحد گویا بین اسناد دادن گویا اون اسناد دادن به نظر میاد یه مدلی در بین اصحاب ما این نسبت های چپکی موجود بوده حالا حال اگر کتاب عیاشی ان خداون توفیه داد تیلا شد این که از کلام اول کلام یک مقداری از مشکلات داره جالی و تاریخی و هدیسی ما حل میشه ناظر به اینه اینجا نداره این من برای مثال برزنم برای این آشنایی پیدا دیگر کنیم جهان هم داریم ما این مورد نیست. مسافه جای دیگه هم داریم که همین مشکل رو داریم در تفسیر عیاشی. البته این مشروع میده که در اون زمان بر اثر روشن نبودن میراس های مدار خرق و اختلافی حاصل شده بایش ما پیدا نکردم حالا چون اگر نوشته بود اسم رو میبرد میشناختیم کجا پیدا شده. چون الان نیست گفته ان زرار رنمیام چه. با علم او هم نمیتونیم مگه با گزار ارواح به با این اختصاری که الان پیدا شده این یه مشکلی داره یعنی این اسانده من املان رو خوندم برای اینکه واقعا یک نکتهی باید باشه که یک مطلب واحدی رو با سوال و جواب به دو نفر که در دو خطه فکریا نسبت داده شده شماره آخری که از عیاشی داره و ان سکونی ان جفرمحمد ان آبایی توضیح دادم سند کامل سکونی چی که رسول الله فرمود این نمین من یو قاتل علا ترویر القرآن کما قاتل تا تنزیلی تنزیری و این مضمون که حدیر نبیتون یو قاتل علا ترویر این در روایت زیادی آمده هم ما داریم هم اهل سنت دارم بیشه مراجعه کن مرحوم تبرسی در مجموعه بیان ابن عباس ان رسول الله من قاله القرآن به غیر علمه فلیت وضع مقعده من النار الان نشد مجال برای مراجعه ایم. من که بینم در مسادر آمه این مزمون رو از ابن عباس نقل کردن یا نه قال و سحر نبی من رواسل عام و خاص حالا یک جای دیگه واژه بحثی بیاد از ابن عباس کلماتی نقل شده اما این نباید از اون باشه توضیحشه وقتیشون دیگه خیلی پس طولانیشون قال و قد صح از النبي اخرامی اصطلاحی بوده در اون زمان وقتی اسنادی رو بررسی میکنن مثلا و یور و می فلان اگر در شش اگر کاملا صحیح بود و صح عن النبي من رواسل عام و خاص اینا 76 تو از کتاب مجموع بیان ترسیه انهو قال اینی تارکن فیکن ما این تمسکتون بیهیلن ترده لکتاب این که همین دیروز روز قدیر هم بنابرای دیار روایات که روایت سقیه احسانت هم هست پیغمبر دیروز این مطلب روز 18 هم فرمودن احتمالاً در روز خودش رحلت هرزت هم که روز بوده صبح فرنده باشن حدیث فقال اینو شماره 78 و هشت و نبی و لعیمه ان تفسیر القرآن لایجوز الا بالعثر سریح سحیح و نصر سریح این رو ادهی از علمای ما آوردن برای شاهد باز عدم حجید زن این مضمونه این روایت می ما هر چیزی ان نصر نداره نداری لا لایجوز تفسیر القرآن الا بالعثر سحیح و نصر سریح ارز شد سابقا حدیثگاهی نقل به لحظه گاهی نقل به مضمون این دو تا وقتی نقل به مضمون این مضمون حدیثات نه اینکه ما هم چه حدیثی داریم لای و تفسیر املای اثر صریح و نص صحیح هیچ چیزی ما نداریم چه که نداریم چون مثلا گفته شده تفسیر قرآن درآی نشه ائمه علیهم بهش مضمون کلام رو به این صورت بردن و این چه روایتی ما نداریم والله ورغل عام عن من تحت القران برعیه طاساب الحق قرار است اینه با هر حالا سندش رو اون بحث دیگه دی. نکته فنی که در اینجا هست ایشون حدیث شماره هشتاد که زدن علی بن ابراهیم فی تفسیری عن احمد بن ادریس عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابی امیر عن حماد بن عثمان ان محمد ابن مسلم ان عبی جعفر فی قول تالا و اذا اضایخشا قال اللی فی حاضر موضه چون بعد در میان مثلا مرد از لیل شید دیگریه اللی فی حاضر موضه خوبست که مراد عمر بشه قشو المؤمنین علیه استما فی دولته خیلی تفسیر تحمیلی بعیدی الا انقال بر قرآن و ذره به فیه الامثال ناس و خاطب نبی به و نحنون علمون فلیسه علمون غیرانا البته شاید صاحب وساید توجه داشته باشه این حدیث برطر قبول بشه که قبوله میشه این حدیث اختصاص به احکام نظریه نداره کل قرانه. این توضیح سابقاً هم ارز کرده که بعضی از ایشان کل قرآن رو شامل میشه از کنم که چند بار راجع به تفسیر علیه بندرانی صحبت شده اون اجمال خیلی مختصر و لباقشونه که این تفسیری که الان موجوده این کتابی که به اسم تصویر از که قطعا مال علیه نبرانی نیستیم در چیز شعبه نیست جزمن و قطعا مال ایشان نیست مرموم آبوز و احتمال دادن یک شاییدی داشته به این دو تفسیر جمع کرد اون احتمال ایشان هم درست نیست این کتاب یک ما مال جمع یک نبر نیست این هم که ایشون خیلی مفصل هاشیه دادن در ذریعه خود اصل ذریعه نبوده برد اون کلام هم درست نیست این که علی بن ابراهیم تفسیری داشته این هم مسلمه این هم جایی بحث نیست اصحاب ما زده کردن این که بعضی را نوشتن که ما اون که در این کتاب از علی بن ابراهیم جایی دیگه نیندیم این هم حالته در این کتاب اونایی که از علی ابن ابراهیم بعد از اون هم غلط اون که تفسیر علی بن ابراهیم به عنوان تفسیر تا آخرین جمع که ما خبر داریم علم خودمون رو بگیم آخرین کسی که میدونیم که تفسیر ازش نه که ظاهرا همون کتاب تفسیر از باشه سیده تابوس در قده از کتابش این گرمین تفسیر علی ابن ابراهیم و توصیفش میکنه به چهار جمع به احتمال قوی اون نسخه ای که در بوده. همون نسخه تفسیر باشه به احتمال قدیم حالا چون میگیم زیاد نظر نکرده میشه اینا پیدا این چند تا نقطه شد من حالا نکاست گفتم که اهم ملاحظه آخرین نکته اینه که این کتاب موجود الان که به عنوان تفسیر به ما رسیده تا اونجایی که بنده خبر دارم قدیم ترین شخصی که این کتاب موجود رو به علی ابن ابراهیم به ما تفسیر نسرت داده از جانب سلیمان هلوی شایعه شهید اوله من دیگه حالتون پیدا نکردم چون چه کنم پیدا کردم تا دین چه شخصی که این کتاب موجود رو پس از حدود سال‌های اواخر سال‌های 800 این کتاب به تفسیر علی المداري معروف شده یعنی حدود وسط 600 سال 500 سال شما می‌دونید ماژل پسری زمانی زیادی حدود 500 سال این کتاب در اوصات ما به نام تفسیر علی بن ابراهیم معروف شده و اون شخصی که گفتیم مثلا یه قرنی نزدیک دو قرن قبل از صاحب سال صاحب ساله از همین نسخه موجود به نام تفسیر نام برده صاحب بهار هم از همین کتاب موجود به نام تفسیر علی بن همین کتاب موجود به قصد ضمنی ذرافت این مباحثی که از می‌گفتم خیلی این کتاب موجوداً قطعا مال علی بن ابراهیم نیست این یقینا یعنی ما در علی نیست و کتاب دیگریست بله در کتاب موجود نزدیک های هفت سال تفسیر علی بن ابراهیمه در همین کتاب موجود مقدار زیادیش تفسیر علی بن ابراهیمه لیکن مشکلش اینه که اضافه برای که به نحوه رجاله به همون مقدار تفسیر کسی که نسخه رو نحوه کرده نسخه شازی از تفسیر خب نسخه نسخه ش ولی ازا روی این تفسیر موجود به عنوان علی ابن ابرانی یعنی جایی که دیمون سلام علی ابن میشه و قال علی ابن ابرانی اونا که اونام درست نیست اونام خالی از اشکال نیست بقیه تفسیر یه مقدارش تفاصیل دیگریه یه مقدارش مثلا تفسیر عبود جارود یه مختصرش خلی مختصرش تفسیر فرات مختصرش، تفسیر مرباس الاخره صاحب کتاب که هنوز درست شناسایی نشده به کتاب که احتمالا علیه ابن حاتم قنزینی باشه احتمالاً این از معلف کتاب باشه معلف کتاب یک واسه از علیه ابن رایی میکنه و در این حال ادهی هم رواست خودش شهر میکنه که واضحه تفاصیه به دیگریه بعضا شما نمیدونیم تفسیر از تو برایست نمیدونیم این روایت اینجا که نوشته علی ابن ابراهیم فی تفسیری یعنی احمد ابن این از اون رواید است که قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست مال مؤلف کتابه چون قصورا علی ابن ابراهیم علا احرابت تقاضی قبل از احمد ابن ادریس خوب شده با هم طبقه مست علی ابن ابراهیم احمد ابن ادریس نعقل میکنه مثلا چیزی وجود نداره این رو صاحب کتاب نعقل کرده این یکی از اون است که نشون میده که مرموم شیفه را عاملی همین کتاب موجود رو از تفسیر علی ابن ایم برونه. علامت اشتباهش رو همینه مثلا نمشه علی ابن ایم بی تفسیر احمد بن ایم این علامت اشتباه مرمومه چون اعکس کردم قبل از مرموم ساحب وسائل سب و ای سال این کتاب نسبت داده شده به عنوان تفسیر علی ابن ایم برون. معروف مشهور ت اینا هم به همین اعتماد نهبیتون و باز هم توضیحی دادیم مرحوم استاد در مثلا در احمد ادن عزیز و احمد علی ابراهیم همین رو نهبی کردن اون هم قلعه اینجا تقلات و فوق فوقالقاد زیادی از بزرگان و بزرگان واقع شده منچه اولیش آنجایی که ما میدونیم به هر نوحون برمیگرده اونجایی که من پیدا کردم ممکنه خب از این هم باشه علایه حالا در این بار اوهان پراغانی از بزرگان و به بزرگان واقع شده که من فیلم خیلی موجز و مختصر از کرم. پس این روایه اصلا مال علی ابن ابراهی میز کنید تفسیر شدید تفسیر که اصولا <تصفح> مرغوم علی بن ابراهی از احمد بن ایریسا قومی عشق علی قومی نقل نمی کنه. اصلا مال نیست بله علی ابن حاتم از اون اقل می احتمالا قائل این کلام حدثنا احمد ابن ازبیس علی ابن حاتم باشه. باز احمد ابن ازبیس الان تو ذهن هم به محمد ابن عبدالجبار نمیخوره. باید واسطه باشه به نظر من اینطور میاد. به هر حال این روایت این همون راوی است که من شوران اثر کردم. حتی الان درمی بینند اشعای میذند. مثلا میگن این علی ابن رفیع تفسیر احمد ابن عزیز. نگاه کن همه شواط هم عمل یعنی عیصون علامه در جنب با تاخری از علی قدیم از سید این حدیث اصلا اصلش معلوم نیست حالا صحیح اصل اون قائل معلوم نیست علی ابن هاشم یا شخص دیگری. احتمال علی ابن هاشم فعلا بیشتر البته عوض بشین احتمال اون 70 اون مشکلش اینه که اون مؤلف کتاب به واسطه شخصی به نام امباسبن چی؟ امباسبن فلان از سادات امباسبن از سوشه سادات موسوی خون بوده و اصله اون هم مکل. اون جزیب رواست ما نیست اصلا اون در کل روایه که الان داریم در آثار سبو اون دو خیلصه داره باره داره امباسبن حالا داره سوش سبحانه چند بارم گفتیم؟ اون مشکل اینه نسخه ای که در اختیار ایشان بوده نسخه صحیح نیست حالا برپرز هم سند ما تا کتاب درست بشه تا کتاب موجود سند ما تا کتاب موجود درست بشه هم معلق کتاب روشن نیست علی ابن حافظ خودشون از سریز را که یعنی زعقا کرده در یعنی روایت و اینا زعیفه زعیف فر اگر او باشه که این مشکل اینجوری داره اضافه بر اون این آقای انباسم محمد انباسم نکی اما از انباسم این این از اولاد اخوات موسا در قوم هم بوده این شخص هم توسیق نداره اصلا توی رجال ما نیستون تو راق نیست شخص کنن دو طور وزید به نظرم از سادات محترم قوم بوده اما جزو علمان هم بوده به نظر میگونه الانی که فماکان این رواست موجود مشکلش خیلی قراروانه نه این که مشکلشی یکی باشه که مثلا بعضی میگن این حدیث صحیحه خیر این حدیث صحیح نیست مصدرش اصولا بازر نیست و احتمالا توش یک نوع تلفیری هم انجام شده احتمال میرم یک نوع تلفیقی درش انجام شده حالا اون دیگه توضیح همونو دستناسای فنی خیلی فنیش باشه برای این دیگه دیگه برد درد مرموم و سایر حالا من اینجا عبارت ایشونی می کنم تطمه کلامیشون رو در باب چارده برمی کنم. بر ایشونی و اتقدم مایدولا الازاره که این رواره زیاده ولی احادیث و فیضاله که از رسون جدن و کذا احادیث و لعباب سابقه که رجوع باشه به علمه باشه و این نمختصر تا علامه زکر لتجاوزی هی حد در روایات در حد تواتو. بعد ف و اما مرویه ان الله لای و خخاطربال خلق به مالا علممون که واپش تو خداوان شتاب کرده سجه او انل مخاطرر قرآ اهل اسمه و هم یهعلمون این خداوند کتاب قرآ فقط به اهل بته اهلبه که معناه کردن ما میفهم را نمیفهمیم. او و هم یعلممون او او مراد جمعی مکلت یعنی مثل آم مجموعی مورد از جمعی مکلفین آم مجموعی وقت در جمعی امت کسی هست که فهمه که اون رسول الله و همه باشه خیلی اداء علم معناه و بعضه هم فاقه کافه همین که بعدی هم فهمیدن کافی است بعد جواب میده پس این هم جوابی ایشان از این حدیث و اما اشکالی که اصولی کردن بعد صاحب سا و صاحب اصولی کردن که حدیث عرض بر کتاب رو چی که روایت عرض بر کتاب نکنیم خب پس با معنی قرآن رو بکنم که عرض رو کنیم, اون نفهم عرض رو کنیم؟ و نفهمیم که شون جواب بیده و عمل عرض علی القرآن فل عمل و این ازن به کتاب و معن یعنی با روایات و عرض با قرآن نه اینجا به خود قرآن شد این هم جواب عمل غیر معلوم نیست عمل خب اشکال اینه که اگر ما ظاهر رو حجت نگیریم چون مشکل کاره اینه که اون روایت می اون روایت حجت نیست تا مطابق با ظاهر کتاب نباشه پس با ظاهر کتاب حجت باشه و و هو و هو ظاهران که ما در وقتی به امر به ظاهر کتاب میگیم که با روایت باشه اما اگر ظاهر باشه و با روایت نه بعدش میگه و باطلان این موردش از قیاس یعنی اونجایی که روایت نباشه و وقتی میگه روایت عرض رو کتاب کردی اونجا هم که روایت نیست میشه شما به کتاب مراجعه کنید غیر قیاسه باطله یعنی ایشون که معنا اون روایت اینه که فقط شما به روایاتی که عرض بر کتاب کردین آیاتی که روایت عرض کردین عمل بکنی نه به یه آیه صافونم حرف غیر صحیح و تقدم فیه و آخر اخر فلجمع بین الاhadith من اون روزم عرض کردم برای اینکه آیون دقیق باشن در کلمات در این چاپی که من دارم در زیل حدیث شماره چلوچار ایشون داره که این مورد در جمع آخر اینه صفحه 143 حدیث 144 حدیث 44. اقول لا یخفا انا آیات الاحکام به نسبت الاحکام نظریه کلها من قسم ساله که همون جای ایشون داره که وحبه کافه بله بلا بله بله اقل منال احتمال وحبه کافه کیف و نسخفی ها تسیرون یه دم بلای جاستی خیلی ها خیلی حرف عزیب بود اونجا هم که نوشه تقدمه انصافا اون تقدمه ایشون هم حقا بسیار عجیب بود باز وقت تقدمه ایشون یک شاید دیگری نگه گرفتن فی درباق قسم انمال اتمت سفر فی امکانت خورت علیه آیت و تقسیر و فسرت لحقا محل شاهده ایشون روشنه چیه ایشون یه اگه زواهر کتاب هجت بود خوره از علی آقای که تفسیر گزاره هجت دویگه چرا فرموش بره از علی و خسترد یه قرینه یه و خسترد یعنی ظاهر به تنهایی هجت نیست باید با تفسیر باشه و از یک روشن شد ایشون با این آیه تمثب باید برای این که زواهر کتاب هجت نیست چون امام فهمدن خور از عریح آیات و تقسیل و خود سرطلن و اشخالی کنم اجمالا درسته لیکن حالا ایک توضیح من شده اجمالا عرض بکنم چون وقت آخر وقت اصلا که من میشه در وسائل این آیه حدیث او برده چون در عده از نسخ هست و در عده از نسخ نیست و خود سرطلن و میشه اینجون این هم ما نمیدونیم یعنی من واقعا هنوز چون میدونیم اجمالا مرحوم شیخ مسادهی که در اختیارش شده کم بوده این راسته ماها هم الان نسبت به این کامپیوتر و در اختیار شده زمان ما هم کم بوده الان واقعا مراجعات ما کمتره تا این نقداری که کامپیتر آنه اما تا اونجایی که من نگاه کردم جمعی این نسخیره با توش پسرده داره حق ب فرمده در بعضی از نسخ هست را خسترد در بعضی از نسخ نیست را, را من پیدا نکرم آشان خبه احلم به مقال بنده اصاب و تخصیل این روایت که توش را با نباشه پیدا نکردید و سرشم اینه لیسه علیه نیشون آقا لیسه علیه کنجون آقا اینه تخصیل شون لیسه علیه کنجون لیس آقا ایمان در تخصیل مراد واجهه براتون این, این لاج اونی که در روایت مبارک وارد شده اینه به معنی خسرت لبیم من سابقا هم توضیح از کردم خیلی مفصله این بحث بحث مفصلی چون بیمیرگار نمیشه. این یه روایتی بوده در کتاب حریز این با این مد قرارت علیه و آیتو تنس این روایت کتاب حریز حالا نسخه چی بوده حقیقت نسخه الله و عالم مرحوم کلی میشه اعتماد نکرده، نه, نه برده کلیه اولین کسی که این آورده مرموم صدوه یعنی شای صدوه در کتاب عربه امراده مرموم صدوه در کتاب فقیه آورده با آمان رویه انظرها را محمد موسیقی ما نمیدیم که رویه گفته خالی از ابحام نیست. بعد از صدوه هم مرموم شیخ توسی باز هم نیوارده شیخ توسی موافق با کلینی شده ایشون هم نیوارده پس در کتاب عربه این حدیث فقط در کتاب صدوه وجود داره، اونم با لغت رویه علاقه بعدها اونم ما خیلی بحث کردن که این روبیه هجه هست یا نه ارز کردم چرارن تکرار نکنم اولین کسی که در فوقهای ما احادیث رو در فقه آمد گفت سریعون زعیفون حسن و مناسق علامه است. ما قبل از علامه ندارم علامه در مختلف این حدیث رو که اول در کتب خودش نوشترم از صدوق صحیح انظراره و محمدیسو مصلحه بعد از علامه هم موظم که آمدن گفتن سهیه زراما لقدر فرمودید؟ اوچنان شد تاریخ پسته بازون و یه و اول تاریخش معلوم بشه متاخترین ایشون رو این حسابیش ها صدوق گفته رویه بحث کردن که این شاید اشکال سندی پیش صدوق داشت پس این در کتب عربه این روایت که از زراره و محمد مسلمه این منحصر از در الله صد اما در غیر حوزه های بگم یعنی کتب اروعه در عیاشی هم آمده یعنی در آخر و خراس هم و در غیر کتب امامیه مضموناً تقریبا حدیث در کتاب دعامل اسلام اسماعیلی مذهبم آمده حیاشی تران بلکه تحقیقا قبل از مهمون کلمی و دعامل اسلام بعد از کلمی و قبل از سبوره پس قدیمترین مصدر به طور کلی فعلا مرسلن کتاب تفسیر عیاشیز بعد از ایشون نیامده بعد کتاب دائم الاسلامه که آتن مرسلنه بعدم صدوق با عنوان رویه عن را محمد نوسیل این کل مسادر حدیثه این در غرم چهارون در اول غرم هشتونان علامه با برای بر صدوق فسحی این اولین بار تاریخا در ذهنتون باشه ما شیف کولیمی و شیف توصی هر دو هر دو این قسمت حدیث نهی باقید حالا یک اصلا من خیلی موجز میخوام بگم لذا بله شبیه مضمونش رو که حارضا آمده اما با عنوان این متن همونطوری که عرض کردن محطنش در کتاب صدو آمد و هم توضیحات کافی در محلش دادیم که این حدیث به لحاظ سندی روشن نیست این معلوم نیست اصلا گیره سندی هم داره که یعنی گیره مخسری داره نسخه حریز روشن نیست زیاد در محل خودش مشکل دیگری نه حریز کلمه و له مثلا آقایان علمای ما غالبا زدن به علم و جن قرات را خسرت یعنی عالم باشه اما اگر لازم تر جاهل باشه به علم وجهر زدن که عرض کردیم از, از کتاب خود رضا شروع شده رضا گفتن اگه عالم باشه نمازش در سفر،, در سفر نماز قصر تمام بکنه نمازش درست جاهل باشه نه این هم بحث معروف قصر برای علم و جهل ما برمحل توضیح دادیم که این معلوم نیست باشه معلوم نیست مراد از اینجا علم و جهل باشه این وقت سرت اطلاع احتمالا مراد مذهب باشه یعنی مثلا اینه هر است که تازه شیعه شده چون مخیال میکرده قصد و تمام در سفر هر دو جایزه اگه سنی باشه تازه شیعه شده رفتی سفر نمازش تمام خونده اشار نداره اما اگه سنی بود و فهمیده مذهب بیت اینه و درست نیست مراد از خودسرف اینه نه این معانی که به ذهن آراد میاد. الان که ما ما در محل خودش ارز کردیم خود روایت مشکل داره، و لذا که به روایت هم فتفا ندادیم از حق با مثل مرحوم کلیمی در این مسئله توضیحات جای دیگه و که به هر حال توی نوسقی که ما از این رواد داریم و فسترطله هست خلافاً به شغل اعظم و اتقدم فلقه سو اندمنعتم مثل سفر فه امکان قرآد علیه آیت تخصیب و, و فسترطله هم آف نه مصلبر اوسرک برگزار می که فقط تنگم نشون طریف شده چون مسل که می چون طرق مشل سر مرسل, مرسل, مرسل نیست. مشکل سر اینه که اگر اگر رواز معلوم به مشیخه برمیگردیم. یه اشکال اینه که اگه گفت رواز محمد مسلم باید دوتایی با هم باشد. اینجا دوتایی با هم دیگه؟ در مشیخه به هر با هم سند نداره به زراره به تنهایی سند داره که سنده صحیحه به محمد نوسیم به تنهایی سند داره که سنده ضعیفه. یک مشکل آون بعدی ها این بوده که این دو تا حدیثه یا یک حدیثه لکن ایشان نظرش اینه که اگه شیخ صدو گفره و زراره با گفره و یعنی زراره یکیه سند سنده اونی که نظر علامه از اینه سال هم صاحب نظر مریض همین که مرحوم مجتبی صدر شهردوست بسفی نظر ما در اون بحث دیگر را کردیم ایده از بزرگان بلکه اولین کسانی که شهر دادن اسانید صدوق رو فرق بین روا و روی انظوراره نمیگیرن مراد اینه و رضا میگه روا از صدوق تصریح انظورا رو محمد بن موسی الان من یک کاریک رو خیلی اجمانه خدمتتون از کردم که روشن بشه کیفیت مراجعه به روایات و اما از این مصومین رو قابل اینکه که از تا که به از تفسیر نداره خب همین ایشون میگه قیاس باطل اگر بود بعد از خب همین اشیال اخواری هم شما الحمدلله از میگه آمون اخواری یعنی اونجایی که روایت آمد و تفسیر کرد عمل به قرآن و سنت معد اگر روایت نیامد شما شما یه به ظاهر کنیم اینه نه قیاس می... باطل کندیentre چرا قیاس نه اجاز... نه نه نبوده. یه دو دقیقه سبت رمانه ایشون, ایشون میگه اگر این توی شد قیاس نکنیم بلکه احیاس بکن. تمام کار اینه عمل به ظاهر برحال نکنیم. من اول صحبت اونا رو بکنیم چی میخواد بگم؟ هم شما چند روز معرفت کردیم صحبت اونا روچند بشه چی میخواد بگه؟ ایشون میگه صراح قرآن بریم با روایات اگر روایت نبود دیگه به ظاهر عمل نکنیم احی روشن. الان میخونیم این لحظی سر بفرماییم الان این چون میخونیم برشون بل ایشون می و میگه و الا تعین اله احتیاط اشتباه الهو روشنم این چون اصلا اگر روایت بود اهلا وسهلا نبود قیاس به تعدیبید شد و اما ما رویتی بعض الاخبار من قولیم علیه السلام اما سمیعت قول الله تعالی و نحوظالک فوجهو آن من آیات ان ظاهر وها دابلن علاوه کم نظری لم یک جز لهو ال جرم و بخلافها یعنی یه اما هر بوده دیگه که مادام ظاهر آیه هست تو خلاف شدی زندگی لحتمال اراده ظاهرها یعنی انکار و هنات ل نه اینکه اما میخواد تأیید بکنه که شام کمی بگر آمارات گرفت. و امکانه هم بشینه لا یدوز و جزم و به ارادت ظاهر ای زن این که اما میگه اماس همه یعنی احتمال داره که ظاهر مراد بشین یعنی که متعینه چرا؟ احتمال نفس و تخصیص و تعویر و نحضاده خلاصه در این شاهد. پس اگر در جایی روایت آمد عمل به کتاب و روایت با همه روایت نعمد قیاس نکنیم اینا بحثشون دیگه از اغلاق خارج شده گفت <تصفح> <تصفح> اینا بیستازه آب نخوره عقلت کم میشه گفت عقل چیه اینا بحثشون از اغلاق خارجید و میگن عیمه اینجور فرمان شما چرا بازده شون میگن بله زبای کلام حجت عیمه فرمان به قرآن مراسی نه لحتمال نسخه و تخصیصه و تعویل و غیر ازاله بل این خلاصه نظرشون اینکانت ال آیه موافقت اندل احتیاط فضا و الله تعین ال اخذ به ظاهر نکنیم این پس اخذ به قرآن به زمینی روایت اخذ به قرآن جایی که مطابق با احتیاطه اینکان در آیت ایشون افتحان نظریه گفته اما ظاهر در از روایت کل قرآنه ارز این چند بار اصلا کلمات ها و روشن شد این خلاصه آیه استفاده بله قابل استفاده نمیشه ایشون میگه ان الله لا خاتم الخرمون آیانمون عین پس ایشون خلاصه حرفش اینه اگر آیه‌ای با روایاتی در تعبیرش توضیحش آمد قبول می‌کنه اگر آیه‌ای بود تعبیر و توضیح نداشت متجذهرش مطابق احتیاط بود قبول میکنه اگر ظاهرش مطابق اختیار نبود به اختیار عمل میکنه. پس به خود ظاهر آیه به ما ها به عمل نشد این خلاصه ایهه ما یه خودی خوبی که ترک فکر اینها رو عشن بشه این چی بگیم تا بعد ببینیم بین با چی بگیم رو عشنه کن بعد امکانه که نل آیه موافقه تندر احتیاط و الا تعین الاحتیاط لشتباه لفک این خلاصه ایه نظر مرحوم شیخ ها را آمدیم الان ان نمایث خیال معارضه و هنا این روایدی که معارضه با روایت سابق ظن زنی و دلاله لا یارض و نسخ المتواتر اطعیه دلاله انصافش اینه بلکه احییشون خیلی باطله انصافا این روایات نه نسخ بود نه خطی دلاله بود نه متواتر بود ما چون که تواصل داشت راجبه اهل اهلیه بودن که القاء ظهور کتاب ما احتمال جمیل تقییه احتمال از تمام روایاتی که آمده که به کتاب عمل بکنید اینا همه در تقییه بشه و اراده الزام مخاطب به ما یعطب دو حجیت حالا این اراده الزام مخاطب به ما یعطب دو حجیت هست یعنی هم موقعیم برای نوع جدل نه برهان اینه اگر ایمان با آیه مراجعه برای ظاهری که بشونیم با, با سونیا مناظره بکنیم و اما آیه سلطی ورد تفسیرها آنها، او استبلال هم ها او وافقت احادیث ثابت فلا اشکالت به بها پس بنابراین این خلاصی آخر بحثیشون چند روز که خوندیم ایشون اینطور طور هم آوری میکنه بین آیه اگر آیه بیاد با تفسیر از اهل بیت تفسیر دوست در این صورت ما به او عمل میکنیم اگر تفصیل درش نباشه اصل به ظاهر نمی کنیم فقط این کار میکنیم اگر مطابق احتیاج باشه عمل بشه میکنیم مخالف احتیاط باشه به احتیاط عمل میکنیم به روشن روشنزو دیگیم این خلاصه یه تفکر صاحب وسائل در نحوه استدلال که انصاف هم حتی نقال باطل و در این